اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لنبی بعده اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سنسلا درسای دولت نبوی ادامه دارد دا درس کذاشتم و شما بالای منطقه بیان داشتم گفتیم که با داری که رسول الله صلی الله علیه سلم هجرت کرده و دست کدام خصوصیات برخوردار بود و بالای بعضی مسائلی که مربوط با مجاهدین و انصار میشد در دا دارالاسلام و بعض کسایی که بعضی حیله ها و مشکلات خلق میکردن و اجرت نمیکردن با و بیان کرده دای این سلسله درس ها انشالله فصل ثانی را شروع کنیم در فصل ثانی مو شما میخواییم که بالای وضعیت امنیتی و عسکری و اقتصادی گپ بزنیم و وضعیت اقتصادی و سیاسی و عسکری و امنیتی دولت نبوی یک یک نوه نگاری کنیم و موضوعاتی که باید بیان شاو را بیان میکنیم ببینیم که دولت دک رسول الله صلی الله علیه و سلام در مدینه بنیاد نهاده بود خلافت اسلامی که توسط رسول الله صلی اللہ علیه و سلام بنیاد نهاده شده بود ای از چگونه خصوصیات برخوردار بود و ازای امنیتیش چگونه بود در این درس ما شما چند هدف دنبال میکنیم هدف ابتدایی که ما شما در این بیان کنیم و است که خوف و ترس و هراس در هر زمان بوده و ترس از دشمن در هر موقعیت وجود داشته و هیچ وقت نبوده که ما از دشمن یعنی در حالت آرام بوده باشیم و همچنان دشمن از ما در حالت آرام نبوده هدف دوم ما است که میخوایم یک مقایسه و مقایسه کنیم بین حالات او زمان و این زمان و ما میخواهیم که به مهاجرینو، و به انصار یک نوه تذکره کنیم و یک نوه تنبیهاتی است که شامل حال مجاهدین و انصاری میشه که فداند درست زندگی میکنن و یک دعوت کوتاهی خواهد داشتیم به سایر مسلمانایی که بیرون از سایه تمکین دولت اسلامی زندگی میکنند و بعضی شبهاتی که دارند شباهاتشان برشان ازاله می دولت نبوی در همان روزهای نخستی که رسول الله صلی اللہ و بنا نهاده و در مکانی که بنیان گذاری شده و روزهایی که روزای سخت و امتحان بود زندگی اصحاب اکرام رضی الله عنهم اجمعین پر از حالات خطر بوده و همیشه شما در روایت که میبینیم دلا بلا و دخیار ها ما شما پیدا میگنیم که اصحاب کرام با شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم در حالت تعقیب در حالت ترسد و در حالت استعاید بودن در حالت استعاید یعنی به ایمان دولت ما شما تیار ساید که میگم نی تیار ساید یعنی در حالتی هستن که آماده به یعنی واکنش یع در هر حالت احتمال خطری خب شروع میکنیم از روایت اولین روایتی که ما شما از صحیح البخاری میبینیم در سهی البخاری اناس بن مالک رضی روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه وسلم از همه مردم زیبا و سخی و بهادر بودن و یک شب در مدینه شنیدن یک آواز جمع شدن و مردم با رسول الله صلی علیه وسلم مقابل شدن و مشاهده میکنن که ابو تلحا رضی الله عنه به یک اسوارس و شمشه را گردن اسب بسته کرده و در میالت کل مردم وقتی که جمع میشه ابو میگه که لم تراعو لم تراعو یعنی به ایمانا که نه نترسید خطر متوجه, نترسید خطر متوجه ما نیست ما شما وقتی که سل میگنیم از سیاق حدیث معلوم میشه یعنی پیش از که ما شما به حدیث داخل می میبینیم که اصحاب کرام رضي الله عنهم در حالت واکنش و استعید بودن یعنی واکنش ساری داشتن در صورت یک خطر کوچک در صورت یک حالت کوچک مثلا یک تهدید احتمالی دفعه با ولاد جنگی برمی‌خوردند و همه با اسلحه های خود بیرون می‌شدند یعنی در حالات مدینه یک شخص با یک اسب داخل می‌شود و تمام اصحاب با رسول الله صلی الله علیه و با اسلحه های خود بیرون میشن و شما سایی کنید که این قسمت عربی را که ما بیان کردیم لفظ حدیث که لم تراعو لم تراعو مطلب شیست که خطر متوجه ما خطر متوجه ما نیست یعنی با این مانا که اصحاب به این اندازه در حالت واکنش هستن که یک حادثه بسیار کوچکی یاره باعث میشه که به حالت جنگی بدل شوان و همه باصله های خود بیرون میبراین و مقابل ازی و ابو طلحر را دیران هم میگه که حالت خطر ن درست مثل حالات کنونی که امروز ما شما حالات مقابل هستیم مثل انفجارات و مثل بمباردمان اس و مثلا ذی که کوه بلند بلند بالای می فرومینزه و پایان مفته و نیاز به است که بگوییم که, که, که اللهم اعز الاسلام و المسلمین و اذل شرک و المشرکین رب العالمین ذات و نصیب مسلمانان کنه و رب العالمین صحیح تمکین و امن مسلمانان را زیاد کنه یعنی به این منک عین حالات بوده بعضی کسایی که بگوین که این زمان ما انفجارات و و مثلا حالات سخت جنگی است و مثلا پیرس و تایرس است این حالاتی نیست که مثلا سرموشما نبوشه حالتی که سر رسول الله صلی الله علیه و بوده یعنی دقیق مثل امروز واره دیروز محمد در جنگ بوده و احتمالات چاپا وجود داشته مثل امروز واره عین شکل که موشما ده احتمالاتی که سر ما چاپا نشه عین شکل و احتمال بودن و مسائل بود که برای حل ازی تدابیر می سنجیدن و هیچ گاه از این غافل نمیماندن و هیچ وقتی نبود که اینا غفلت کرده باشند و د غفلت اصحاب گرفته شده باشند نه میشه رسول الله صلی الله علیه وسلم با اصحاب برای حل مشکلاتی که متوجه بود خطراتی که متوجه شان بود به او تدابیر میسنجیدن و آرام آرام با حرکت میکردن به میخاطر ما شما کتابای سیرت سیرت بینیم تمام سیرت نویست به این مسئله متفق هستند از روایات دقیق ثابت است که رسول الله صلی اللہ علیه و سلم کارایی که نکرد تقریبا اول کاری که انجام دادن امار مساجد بود بخاطر از این که از مساجد دعوت و تبلیغ و بیان و تحکیم شریعت منتشر میشه و دوم کاری که انجام دادن تابعه معلومدار است که اخوات اسلامی رو به وجود آوردن اخوت اسلامی وقتی که به وجود بین که مشکلات متوجه و کم میشن نسبت به یک از بین شما کسایی وجود داشته باشه که علیه شما دسیسه سازن و هم کاری که بود مواهدات انجام دادند یعنی با سایر گروپایی که نزدیک مدینه و دولت اسلامی است و ازو ساحات خطر متوجه دولت اسلامی است رسول الله صلی الله و علیه و سلم با تمام ازو موااهده امضا کردند و در قسمت آخر باز در تشکیل جند اسلامی کار گرفتن نه یعنی کاری کس ما تشکیل جند اسلامی را جور کردن که یعنی صحابه تربیت شدند و اعداد صورت گرفت و بعد از مردم به جنگ و با پیکار و با قتال آماده شدند و عین شکل مثلا ما شما می‌بینیم که وقتی در اوقات آخر زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم خطرات آینده را این مشاهده می‌کردند و این را می‌دونستان که این در قسمت خطرات دیده بودند و در قسمت از این مثلا بعضی جاها ما شما سن میکنیم که از رسول به باکی و به هیچ وقت ثابت نیست که در امور جنگی و در امور تدابیر امنیتی و در امور احتیاط کدام به احتیاطی کردیم در وجود از که آیت قران کریم وجود داره که الله متعال میگه که والله که من الناس ما تو را از مردم نگاه کردیم یانه در پناه ماستی از مردم یا مردمی و به تو شر رسانده نمیتونند بعض فایده دیگه خارجی حدیث است که باید ما شما تفصیل کنیم چون از واقعات و روایت ما شما حالات میخوایم که تبارز بده دریه یک مسئله مهمی است که بر امیر و امام متوجه میشه و این است که امام ابن بطال رحیم الله میگه که برای امام و امیر شایسته نیست که از همه جلوتر سای خطر بره چرا بخاطر ازی که بالای ازی امام بالای ازی امیر یعنی کلمه و وحدت مسلمان ها جمع است یعنی با کار است که امام و امیر المسلمون کس از احتیاطای یعنی زیاد برخوردار باشه و احتیاط کنه در روزهای نخستی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه آمده بودند تدابیر شدید امنیتی میگرفتند مثلا از تمام اسباب لازم استفاده میکردند برای پایری یعنی کردن پیره خود زلا و خسته میسوختند از تمام اسباب لازمی که در دست بود استفاده میکردند تا زمانی که علای مطال آیته که ما تلاوت کردیم نازل کرد و بعد از رسول الله صلی الله علیه در بعض روایت های دیگه می که رسول الله صلی علیه و تا آمدن آیت یعنی درباره تدابیر شدیدتر بود ولی بعد ازی یک اندازه رسول الله صلی اللہ وسلم در توکل به آیت تعالی متعال نسبتاً از سابقه به تدابیر یعنی بدتی تر شدن در یک روایت صحیح آمده است که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بسیار شب زندهداری میکردند. یعنی در پیره کمخواب میشدند اکثر شبها را پیره میکردن تا زمانی که فرمودند لیت رجلا من اصحابی صالحا یحرسینی لیله یعنی در بین اصحاب ما یکی از کسای صالح یعنی آدم نیک نیست که بر ما صرف شب پیره کنه. و آیشه را هم میگه که ما در نزدیک دروازه آواز اسلحه را شنیدیم وقتی که آواز اسلحه را شنیدیم رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کردند که چه کسی است جواب آمد که ما سعد ابن نبی وقاس هستم و برای پیرداری شما آمدیم یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم خواب شد و تا زمانی که میگه ما آواز خواب شنیدیم لایت رجلن من اصحاب صالحا یحرسنی لیلتن یا ایلیت ها یا ایلیتان که دلالت به بیی میکنه که رسول الله صلی, اللح صلی اللح الله علیه و سلم آرزو کرده که یکی از سهومهای آدم نیک پیدا میشه که بیا او استرفس شاب پیری مرا کن. تا وقتی که ساده نبی قسمه و پیرامیگنه بررسیلاس رسول الله صلی الله علیه و خواب میشه. دیگر روايات از برابر سهید سونه نصايح روايات امامان که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و در مدتی آمدن در روزهای نخست شب زنداری میکردند و هر شب از علت پیر دادند یعنی خسته میشدن و مزی خواب را نمی چشیدن تا زمانی که آرمان کردن که کاش کسی بیاید و پیرهی ما کند یعنی اینیست که نن شما که این بران دلیل است یعنی مسائل فوق ذکر که گفتیم یک دلالت به این میکنه که ایشان بسیار احتیاط میکردند از احتیاط بسیار زیاد بر زمانی که تهدید متوجه میشد از همه جلوتر تحقیق و بررسی میکردند ما شما میبینیم که یک حالات غیر متراقه در مدینه صورت میگیره یک شخص با اسم از همه جلوتر رسول الله صلی الله علیه و با سایه خطر میره و سایه خطر بررسی میکنه امام ابن حجر در شرح صحیح البخاری در کتاب فتح الباری میگه که یک از فواید دیگر این حدیث این است که باید احتیاط شود و از دشمن خود را نجات بدهی و بالای رعیت واجب است که پیره و حفاظت امیر خود کنند یعنی امیر ما شما یا امیر المؤمنین است یا والی یا هر کسی که ما شما در حراستش است باید ما پیرداری دور کنیم مثل که سعد به نبی وقاست پیرداری کرده رسول الله صلی الله علیه وسلم این همه سختی ها را برداشت میکردند کردن بر علاوه از این که از همه کرده توکل ایشان بیشتر بود تا اینکه که به ایشان اقتدا کنند به همین سبب با دو زره بعض اوقات رسول الله صلی الله علیه سلم دو زره را بیرون می شدن با وجود آن که زمان که خطر متوجه رسول الله صلی الله علیه وسلم میشد، اصحاب خودا سپر می ساختن دمر دم رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی دیوار جور میکردند مو شمه سیل میگنینم که وقتی که ما میگیم که انصار یعنی اینا لقب انصار رو به خود کسب کردند مری دلیله که صحیح گنینن وقتی که در جنگ اوحد خطر متوجه رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه انصار دم به دمر رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنن تا که رسول الله صلی الله علیه و سلم شهید نشه یا کفار بالایش مسلط نشن و تا زمان که جنگ اوحد هرج و مرج بعضی وقتها به وجود به با مخاطره آمده بود که به یک قسمت مجاهدین اول آمده بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم شهید شده این اینجاست که باز رسول الله صلی الله علیه و بالای علی رضی الله عنه امر میکنن و علی رضی الله عنه با قتل مشرکین از صحه یعنی در محاصرهی که رسول الله قرار گرفته بود از محاصره بیرون میشن ولی با وجود هم ما هم سالم میگنینیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام تدابیر لازم میگیرن میگیرند و دزیره را میپوشند و به حالات جنگی کیاس می که است متوجه میشن به خاطر ما شما سالم که بین توکل و استفاده از اسباب هیچ تعارض و وجود نداره الا که توکل عمل قلبی است و وقتی که موشما سنگ استفاده اسباب کس عمل جواری هست یعنی در قلب موشما به الله مطال توکل میکنیم و در ظاهر شما از همه اسباب استفاده میکنیم و اینی مسئله بعضی مسائل تشریحات لازم که در خصوص حدیث اناس بن مالک شده قرار رضایل سوال از گفته اناس بن مالک رضی الله تعالی عنه معلوم میشه که رسول الله سوال الله و علی در مقابل مردم آمدن و ابو تلحه بر اسب سوار بود و در گردنش شمشیر آویزان بود. دلالت بران می کند که رسول الله صلی علیه و همیشه در حالت واکنش بودن. یعنی به صورت فوری به حالت جنگی ودل می شدن و اسلحه را همیشه با خود می داشتن. نه که از ایشان دور باشد زیرا از همه اول استادمی بودن. یعنی این دومین که رسول خدا اولین نفر است که می آید اسلحه با خود داره. ده دا حالت و است و می خواهیم که حالات ترسید کن معلوم کن که چی حالت است. از حدیث مستقیم معلوم میشه. بعضی مسائل دیگه هم است که مثلا مشهومه باید ما با مجاهدین یا کنیم. نزد علمای شوافه رحمه الله میگویند که حمل اسلحه یعنی حمل کردن اسلحه خودش واجب است و گذاشتنش حرام است. و که پیش میکنن این دلایلش یعنی زمانی که حراس از دشمن موجود باشد و یا هم جهاد دفاعی و عین باشد در این حالت حمل اسلحه واجب سر هر مسلمان و هر مجاهد و ترکدن و گذاشتن اسلحه خوستن از خود دور ایره حرام میگن چرا اللہ عزوجل در سوره نسایت دوستی یک میگه که ودداللدین کفر و لو تغفلون عن اسلحتکم دوست دارن کسای کفر, کفر کردن یعنی تغفلون که غافل کنند شما را ان از اسلحتوکم از اسلحه هایتون فیمیلون علیکم میله تن واحده تا وقتی که سر شما یک بارگی حمله کنن یعنی ببینونا که یا دوزانن که ما شما از اسلحهای های ما غافل شیم اسلحهای های ما از ما دور شویم، یا سر ما شما چی کنن حمله کنن به خاطر میگن که امام ابن کثیر در تفسیر آیه میگه که نزد بعض علما در نماز خوف یا در صلات خوف گرفتن اسلحه درات به وجود اون می زیرا ظاهر حدیث است و یا قول امام شافیه هم همین پس که پیشال موید کردیم و سوره نساء 231 یکیم به این اشاره میکنه که ود الذین کفروا دوست دوران نکاسه کفر کردن کفار سن لو تغفلون ان و شما را از اسلحتون چی کنه غافل کنه فیمیلون علیکم میله واحده و یک باری بالای شما چی کنن یا حمله کنن و هجوم آور شوند و از شما ساحه رو باز دیگه آیت است که دمی سوره نساء و سدکه میگه که ولا جناح علیکم ان کان بكم اعظم من مطر او کنتم مرضى ان تدعوا اسلحتكم ولی بعض وقتا یعنی جواز اومدگی اس وقتی اگه ما مثلا مریض باشیم یا ما شما را بسیار زیاد اذیت میکنه یا ای که از باران اذیت میشیم ما میتونیم کسلهای خودا چی کنیم به با خاطر امام قرطبی و اهل ظاهر این میگن که در صلات خوف گرفتن اسلحه با خود واجب است زیرا امر علی از وجل است ولی در صورت باران مریضی جواز گذاشتن اون داره وجود داره امام ابن عربی میگه وقتی که در حالت خوف نماز میخواند باید اسلحه را با خود بگیرد قول امام شافی یعنی به ظاهر نس دلالت میکند و دلالت به داره که مثلا ظاهر نسل به شما میگه که وقتی که نماز خوف هستیم ما شما قبول کنیم ولی امام ابن عربی که قول میکنه میگه که اخذ اسلحه و حمل اسلحه متعلق به حالت است به ترس است. اگر تاسو مسيول زیاد متوجہ تنست، مادا سلاح را ببیننه نه ګنېش مشکل نیست. ده. امام قرطبی میفرماید که این آیه به آن دلالت دارد که مجاهد در تمام حالت در واکنش سری و بدشمن زیرک باشد و هیچ ګونه بی‌پروايي نکند. زیرا یک لشکر زمانه به مشکلات مقابل میشوید که بی‌پروا شون. هر وقت لشکر بی‌پروايي آمد یعنی اینه ببینونه که آرام آرام مشکلات متوجهم همیشه. و در تفسیر آیه بعضی مفسرین دیگه میگن مثلا خزو حذرکم در تفسیر میفرماید که شمشیرهای خیش را کم خود بسته کنید زیرا این ضبنده یک غازی هست است یعنی همیشه غازی باید مجهز و با اصلا در دا وجودش داشته باشه یک تتسکره برای مشاهدین است که برادران مجاهد تقوی عللار اختیار کنید و اصل های را در مکانهای پنهان نگذارد چرا که شما در جهاد فرض عین هستید و بالای شما واجب است که هر وقت تیار باشید و آماده باشید و به با مطابق های قرآن کردیم و جنگ و به املا آمماده باشید. اکثر مجادینه که ما شما می یعنی اسیر شدن در بندی خانه هستن اینا با باانه های امنیتی و این آن اصلاح های خود از خود دور می و دستگیر میشن و به خاطر همیشه باید با خود اسلحه داشته باشن اسلحه های خود دوری نکنن بعضی اسلحه های خفیف کوچک مانند بم دستی و مثل تفنگچه‌ مثلا و غیره همیشه باید با داشته باشیم و همیشه در حالت دفاعی باشیم بعضی مسائل دیگه ای که انشالله مربوط به این درس میشه ما شما بیان میکنیم یعنی درس قسمت دوم شده داره این درس خلاصه میکنیم قبل از خلاصه یک مسئله را می‌خوایم بیان کنم که ما از یک روایت و لا بلا سایر روایت ما شما معلوم کردیم که دولت نبوی که رسول الله صلی الله علیه و بنا نهاده بود پر از خطرات و پر از خوف بود و همیشه پیره وجود داشته حتی خود رسول الله صلی الله علیه و پیره میکردن میکردند اصحاب بر رسول الله صلی و میکرد و حالاتی که مثلا از هر نگاه در تحت خوف و تحت تهدیدات امنیتی قرار داشتن. بنابراین تحدیدات امنیتی و نبودن امن و خوف و, و مثلا حالات جنگی و داشتن اسلحه و تیار بودن به جنگ این از حالاتی ای است که یک مجاهد یک مسلمان همیشه باید با این حالت آماده باشه بعض کسایی که میان شبه وارد میگن که خلافت اسلامی صحیح تمکین نداره صحیح تمکین به این یک صحیح نیست که اینا مثل سایر مناطق واره آرام یعنی بدون ازی که نه تهدید باشه و نه خطر باشه یا زندگی کنن و موتر بیا پشتون و اینا رو به مدرسه انتقال بده از مدرسه پس یار موتر بیا را خانه پایین کنه و هیچ آواز نباشه و صدا و نباشه و انفجار نباشه یعنی به اینا اینا منکر روایت هستن که دلالت به خود رسول الله صلی الله علیه و سلام میکنه که به خاطر نهادن اصاصه ستون دولت اسلامی چقدر سختی ها را تیر کردن ها دیدیم که شبها را بی‌خواب کردن مزی خواب نیدن حتی آرزو کردن که یک نفر پیدا کنه و ما خواب شون. پس تمام علما و تمام بزرگایی که در بیرون از دولت اسلامی زندگی میکنن و شبها را ورت میکنن که سوای تمکین و امن نیست باید شما بفهمین که مثل دولت نبی واره فعلا خلافا علامین ها جن نبوت ده حالات است است که خوف متوجهش است تمام دشمن دنیا تمام احزاب که هم از منافقین و هم از اهل کتاب و کفار و مشرکین همشه یک جا شدن و بسهای خرد خرد و کوچک خلافت حجوم آوردن پس بر شما است که از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی کنه تمسک به قرآن و سنت کنه و شما باید ایره یک دلیل بگیره یعنی خطر یک متوجه دولت اسلامی یک دلیل به خاطر ازی بگیرین که بر حق بودنش است چرا در وقت فتنه ها امام میگه که فرقی حق چطور پیدا کنین که تیر دشمن ده کجا بسیار اصابت میکنه و مرمیای دشمن ده کجا بسیار اصابت میکنه اون قسمت کس اون اونجا یعنی صاحی حق است فرقی نوجه و طایفه منصور ده زندگی میکنن پس شما دلیل به برحق بودن و حقانیت خلافت میگیرین چون که سلف همی و شما می دلیل روان کنن که فرقی حق هم شما بشنسه. چرا حدیث صحیح هم رسول الله میگن که لا تزال طائفه من امتی ظاهرین علی الحق یعنی همیشه یک قسمت از امت ما به حق می باشند و اینا کسایی هستند که قطال میکنند در رای الله و مثلا در دیگه اصول سلف از در عقیدش که فرقی ناجیه و اهل حق است اینا طایفه کتاب و شمشیر هستند و امام ابن تیمیه رحمه الله در کتاب خود میگفت که کتاب ما هدایت میکنه و شمشیر چه میکنه؟ نصرت می تا این خاطر ما و شما باید اهل کتاب و اهل شمشیر باشیم و وقتی که اهل شمشیر باشیم ما به با شما دلایل که بیان کردم به خاطر از اینکه حمله اصلها نزولمای شوافه و اکثر umat اسلامی واجب است با قرآن می خونیم به خاطر تحکیم قران و سلا و با اصلها به شمشیر نیاز داریم ما و شما پیرو گاندی خونی نعوذ بالله که مثل کس دروی راس ما کسلی دی ماروس روی چپ خبردار بتیم یا ما شما نعوذ بالله باشیم یا مثلا پیس گفته دین اصول و و تمام عزت و افتخار زیر پای پارتیم ما و شما کسایی هستیم که شناخت ما و شما از قطال و از توحید میشه و امام حسین رضی الله تعالی عنه میگه که حقیقت زندگی عقیده و جهاد است حسین پس ما از قرآن عقیده میگیریم و به خاطر عقیده جهاد میکنیم و به خاطر این کلمه را یاد میگیریم و به خاطر تحکیم از این کل زندگی ما و شما هدفمندو است یا این است که درای در تحکیم دولت اسلامی درای در تحکیم شرع الله یا الله مطال ما شهادت میده یا که فتوحات میده اگر شهادت بده ان که یعنی به هدف اساسی زندگی خاطر رسیدیم و اگر بر ما فتوحات میده باز به تحکیم کوشش میکنیم و دفع فساد میکنیم و قاتلوهم حتى لا تکون فتنة و يكون و كله لله تا وقت ما شما قتل میگنین که فتنه از بین بره و دین از آن الله عز و جل شد پس یعنی گپایی که شیطان با شما مندازه شباهاتی که دشمنا و مرتدین مندازه و بعضی گپایی که هوای نفس شما برشمایی را القا میکنه که گویا اگر در خلافت بره شما شهید میشه یا زود به قتل میلیسه چرا حالات جنگی است این و صفات منافقین است این صفات خود کنه حجرت کنه و به صفوف مجاهدین بپیواندین و دولت را که رسول الله صلی الله علیه و پایه گذاشته بود یک بار دیگه باز نو یعنی نو نهال سر زده با هم کوشش کنیم که با شکل از اشکال با هر نوعی که میتونیم با دعوت و با شمشیر رو با هر حالی که باشه حمایت از دولت اسلامی کنیم و در نهایت ما شما بالای حالات امنیتی اولین نخستین دولت اسلامی گم زدیم ما گفتیم که از حالات امنیتی بسیار شدید برخوردار بود، تهدیدات امنیتی بسیار زیاد بود، امکان وقوع چاپا و امکان وقوع حمله‌ها زیاد بوده و ما شما سعی که که ها وجود داشته و اصحاب همیشه در واکنش سریع قرار داشتن و با حالت مقابله می‌کردند و برای حل حالات یعنی تدابیر امنیتی را گرفتن و درس ما ادامه داره قسمت بعدیش ان بحث پنجم دنبال میکنیم بارک الله لنا ولکم فالقران العظیم و نفعنا و ایاکم بالايات و الذکر الحکیم السلام علیکم و رحمت الله و برک بی حکیم السلام علیکم و رحمت الله و برک بی حکیم